سلام دوباره شما دارید پادکست الف رو گوش می کنید این قسمت ادامه قسمت قبلیه و شما اگر قسمت قبلی رو نشیندید حتما برید اول قسمت قبلی رو گوش بدید چهار پرده اول نمایشنامه دستای است و بعد بیاید این قسمت رو گوش بدید در ادامه قرار ما ادامه اون نمایشنامه رو براتون بخونیم چون نمایشنامه خیلی طولانیه ما در دو قسمت براتون منتشرش کردیم بریم ادامه نمایشنامه دستای آلوده رو با هم بشنویم. هگو روی تخت خوابیده و جسیکا کنارش نشسته. هوگو تپ داره و حالش خوب نیست. جسیکا از جا بلند میشه و حوله به دست به دستشوی میره که پرداها ها تکون میخورن و بعد الگا از پشتشون بیرون میاد و کنار تخت هوگا میره. چند لحظه بهش نگاه میکنه، خم میشه و بالش رو براش مرتب میکنه که جسیکا با حوله خیست برمیگرده. الگا زود بهش میگه داد نزنید من، اما جسیکا بهش اطمینان میده که قصد نداشته داد بزنه و دعوتش میکنه که بشینه. اولگا خودش رو معرفی میکنه که جسیکا با بی میگه حد زده بود. اولگا با اشاره میپرسه که هوگو زخمی شده؟ جسیکا میگه که نه فقط مست و حوله خیس رو روی پیشونی هوگو میذاره. اولگا با وسواس خاصی حوله رو مرتب میکنه بعد در مورد وضعیت هودرر سوال میکنه. جسیکا دوباره ازش میخواد که بشینه و میپرسه شما بمب رو انداختین خانم؟ الگا تعیید میکنه. جسیکا توضیح میده که همه سالمن و بعد با تنه میگه ایشالا دفعه بعدی بخت بیشتر بهاتون میاره. هوگو اشاره میکنه و میگه میدونستید اون تو دفتره؟ الگا میگه که نمیدونسته اما جسیکا کوتاه نمیاد و میگه اما حتما میدونسته ممکنه اونجا باشه. الگا میگه بهترین اتفاقی که میتونست بیفته همین بود. حزب ها رو دوست نداره. جسیکا پشت شوهرش در میاد و میگه هوگو خائن نیست. اولگا موافقت میکنه و میگه اونم همین فکر رو میکنه اما نتونسته بقیه رو هم متقاعد کنه که هوگو خائن نیست مخصوصا که کار هوگو خیلی طول کشیده و باید تا حالا کارو تموم میکرد جسیکا باز از هوگو دفاع میکنه که خب باید فرصت مناسب پیدا میکرد اما اولگا میگه که فرصت رو آدم باید خودش ایجاد کنه جسیکا میپرسه شما رو حس برستاده اما اولگا رو حزم نفرستاده. جسیکا با نفرت میگه: آها، اه یه بم گذاشتید تو کیفتون و همینجوری اومدید با کمال عشق و مهربونی پرت کردید طرف هوگو تو از بتنام شدنش جلوگیری کنید. اولگا میگه که اگه موفق شده بود همه فکر میکردن هوگو خودشو با هودرر کشته. جسیکا میگه بله، اما اون وقت مرده بود. اولگا میگه که الان هوگو هر کاری بکنه دیگه راه خلاصی از این مخمه نداره. فکر میکنه جسیکا جلوش رو گرفته اما جسیکا حد سرعت میکنه و اولگا اصرار میکنه ولی کمکش هم نکرده. جسیکا میگه که هوگو هیچ وقت ازش مشورت نخواسته برای ورود به هز برای گرفتن مأموریت کشتنی آدمی که حتی نمیشناستش. اولگا میگه جسیکا ایش نظر جالبی نمیتونسته به هوگو بده واسه همین ازش مشورت نخواسته. در ضمن هوگو خودش حزب رو انتخاب کرده و خودش خواسته این مأموریت رو بگیره و همین باید برای جسیکا کافی باشه اما نیست. با صدای ناله هوگو توجه هر دو بهش جلب میشه. اولگا با دلسوزی میگه هوگو حالش بده. و جسیکا نباید میذاشین اینقدر مشروب بخوره اما جسیکا این نگرانی مسخره و اگزیوتیک رو از هم میپاشونه و میگه اگه بوم به الگا بهش خورده بود الان حالش خیلی بدتر بود بعد هم بهش تنه میزنه که بهتر بود هوگو با اون ازدواج میکرد و وقتی الگا میرفته تو این کوچه و اون خیابون بم مینداخته هوگو میمونده خونه و لباساش رو اوتو میکرد میگه هوگو همیشه پوز حرفای سیاسیش با رو میده شما عاشق هوگو بودید مگه نه اولگا از جواب دادن مستقیم به این سوال تفره میده و میگه زندگی زنای روشنفکر وابسته به عشق نیست در حالی که مال جسیکا هست مثل همه زنای احساساتی. اما جسیکا با درایت میگه احساسات خودش رو به عقل و شعور اولگا ترجیح میده. بعد هم حگور رو بیدار میکنه و این بحث خاتمه پیدا میکنه. هوگو با دیدن اولگا از جا میپره. حسابی گل از گلش شکفته و شروع میکنه به تون حرف زدن که چقدر خوشحال اولگا اومده. کلگا باید بهش کمک کنه که درد سر بزرگی تو راهه اما بعد مکس میکنه انگار تازه همه چیز رو فهمیده باشه. میفهمه که اولگا بم رو انداخته. با ناراحتی میپرسه چرا بهم اعتماد نکردید؟ اولگا از جسیکا میخواد لیوان آب بهش بده. لیوانو میگیره و آب رو می پاشه توی صورت هوگو تا سر عقل بیاد و به حرفاش گوش کنه. بهش توضیح میده که اوزا توی حزب چقدر خرابه همه فکر میکنن هوگو خائنه و اون باید حتما کارو تا فردا شب تموم کنه هزار تا دلیل برای اعتماد نکردن به هوگو وجود داشت اما اولگا بهش اعتماد کرده و بقیه رو هم مجبور کرده بهش اعتماد کنند. اما حزب جای بچه بازی نیست و هدفش هم این نیست که از هوگو قهرمان ملی بسازه حزب فقط میخواد به هدفش برسه و اگه تا 24 ساعت آینده کارو تموم نکنه خب حزب یه نفر دیگر رو میفرسته هوگو مثل بچه‌ای که از پدر و مادرش قهر کرده میگه که اگه حزب همچین کاری بکنه از به استفا میده اما اولگا باش اتمام حجت میکنه که از این رای که وارد شده هیچ برگشتی نیست و فقط با مرگ میتونه از حزب بره هوگو البته میگه از مرگ ترسی نداره اما اولگا میگه که این مرگ یه مرگ پر از خفت و خاریه نه اون مرگی که هوگو لایقشه حتی رو میکنه به جسیکا و ازش میخواد به هوگو حرفاش رو بفهمونه اما جسیکا خودش رو میکشه کنار و میگه سیاست چیزی نمیدونه به هر حال وقت رفتن اولگاست برای بار آخر و ملتمسانه از هوگو میخواد که تصمیم درست رو بگیره و بعد رو خاموش میکنه و میره توی تاریکی و جو سنگین بعد از رفتن اولگا مکالمه امیقی بین هوگو و جسیکا شکل میگیره جسیکا میکنه هوگو رو که انگار از لبی پرتگاه سقوط کرده آروم کنه هگو واقعا داغونه اولگا تنها کسی توی دنیا بوده که به هگو اعتماد داشته به معنی واقعی تنها کس و حالا اونم اینطور میگه آدم بدون اینکه کسی بهش اعتماد داشته باشه چطوری میتونه زندگی کنه جسیکا با هوگو هم دردی میکنه و بهش میگه هیچ وقت کسی به اون هم اعتماد نداشته از همه کمتر خود هوگو وقتی هوگو چراغ رو روشن میکنه جسیکا روش رو برمیگردونه و میگه فکر اینکه هوگو میخواد کسی رو بکشه ازیتش میکنه ازش میخواد اسلحه رو بهش بده تا نگاهی بهش بندازه هوگو اول تعجب میکنه چون اسلحه تموم بعد از پیش جسیکا بوده اما جسیکا میگه تا حالا براش فقط یه بازیچه بوده اسلحه رو میگیره حس ترسناک و عجیبی براش داره انگار واقعا برای اولین باره که بهش دست میزنه اسلحه رو برمیگردونه به هوگو و با ناباوری میگه تو میخوای یه نفر رو بکشی هگو میزنه زیر خنده جسیکا بالاخره داره بهش اعتماد میکنه اما وقتی که دیگه فایده ای نداره وقتی که کار از کار گذشته. دیگه اعتماد جسیکا هوگورو رو نجات نمیده. جسیکا میگه تا همین امروز صبح باورم نمیشد ممکنه بمیره اما لحظه ای که اومدم توی دفتر اون مردو دیدم که ازش خون میرفت دیدم شما همه تو مرده بودید هودرر هم مرده بود حتی اگه تو اونو نکشی یکی دیگر رو میفرستند. انگار بم به اگر هیچ خاصیتی هم نداشت لاقل باعث شد جسیکا قضیه رو جدی بگیره. هوگ به جیسیکا اطمینان میده که خودش هودرر رو میکشه و همینطور که از کارسکی خون اسودرر هم میره انگار این تصور قراره بهش قدرت و شجاعت این کار رو بده حداقل اون لحظه که میده با خودشیفتگی و مثلا بی‌احتنایی میگه اومده بوم رو انداخته به دیوار بعد هم به خودش افتخار کنه که اصلا ما رو نمیدیده اگه آدم مجبور نباشه ببینه داره چیکار میکنه هر کسی رو میتونه بکشه اصلا هر کسی میتونه آدم بکشه من داشتم میزدمش من تو چشماش نگاه میکردم من انزیک بو تیرو شلیک کنم اما به الگا باعث شد همه چیز از بشه. جسیکا میپرسه واقعا داشته شلیک میکرد؟ واقعا میخواسته تیرو بندازه؟ اصلا میتونسته اون اعتماد به نفس یهویی یهویی هم میره. اوگو برگشته به خود واقعیش و خودش هم شک داره. میگه عصبانی بوده و احتمالاً تیرو مینداخته. اما حالا باید برگرده سر خونه اول وقتی تو حزب تصمیم میگیرن کسی رو بکشن براشون مثل خط زدن یه اسم از لیست ساده و تمیز. اینجا شده مغازه آدم کشی. که هودرر را میره و نقشه میکشه اما هگو مدام تصور میکنه جسدش چه شکلی میشه هگو میگه درست مثل همه کشتن و مردن یه چیزن در هر دو صورت آدم تنهاست هودرر خوششانسه چون فقط یه بار میمیره اما من الان ده روز هر دقیقه میکشمش اگه فردا هودرر رو نکشه یا باید فرار کنه یا باید خودش رو تسلیم حسب کنه اگه بکشه درمانده و گمشده از جسیکا که باید گ جسیکا میخواد چیکار کنه چون اون تنها کسیه که هوگوالان الان توی دنیا داره و تنها کسی که مهمه جسیکا با جدیت معصومانه پیشنهاد میده همه چیز رو به هودرر بگن اما خب این دقیقا همون چیزیه که حزب بهش میگه خیانت جسیکا اصرار میکنه که یعنی فقط چون عقایدش مثل تو نیست باید بکشیش به نظر میاد جسیکا با این که از سیاست چیزی نمیدونه روشن و با دموکراسی بیشتری عمل میکنه از هوگو میپرسه واقعا عقاید لویی و الگا درسته یا چون فقط هوگو اول اونا رو دیده و هودرر رو اول ندیده دنبال روی اوناست هوگو میگه این حرفا دیوونگیه عقیده که ویروس نیست به جون آدم بیفته که مثلا دوچار چهار عقیده های مختلف بشه جسیکا گفت که از اینا سردر نمیارم اما به نظرش میاد هودرر آدم صادقی باشه و صلاح و مصلحت حزب رو بخواد هوگو اما میگه هودرر سوسیالیست خائنه جسیکا می هودرر هم فکر میکنه هوگو خائنه خب احتمالاً آره ولی این وسط حق با کیه؟ هوگو اعتقاد داره که حق با اونه چون سیاست یه علمه و میشه ثابت کرد کی درست میگه و کی نه. اما سوال پیش میاد که اگه اینقدر مطمئنه چرا برای کشتن هودرر شک داره؟ هوگو میگه ماهها و سالها طول میکشه بشه این مسائل رو توضیح داد. انگار کلافه شده باشه میگه که دیگه جسیگا بهتر بره بخوابه. جسیگا میفهمه و ازش میپرسه مگه چی شده؟ و چی گفته؟ اما هوگو میگه که کمک خواستن از جسیکا دیوونهگی محض بوده و انگار اون از یه دنیای دیگه میاد. جسیکا عصبانی و شاکی میگه که هوگو هیچ وقت هیچ چیزی رو بهش توضیح نداده. کمکش نکرده تا چیزی رو یاد بگیره. بعد میگه هاست من رو توی دنیای شما مردا گذاشتم بدون اینکه بذارم به چیزی دست بزنم. همش به هم گفتین خیالت راحت، همه چی آروم و خوبه. تو هم فقط باید بری توی گلدونا گل بذاری. چرا به من دروغ گفتید؟ چرا منو توی نادونی ول کردید؟ مباخ یه روز میاد میگید دنیا به آخر رسیده و شما هم در برابر این خطر هیچی از ازتون بر نمیاد و منم مجبورم انتخاب کنم میگه دلش نمیخواد آدم بکشه دلش هم نمیخواد بذاره هوگو آدم بکشه میدونه این برای هوگو زیادی سنگینه اون خودش رو تبرئه میکنه چون انقلابیه و نه سوسیالیست خائن ولی چه فایده هوگو دست اونا رو هم تو حنا گذاشته و حالا باید جسیکا انتخاب کنه و خب اون زندگیش با هوگو رو انتخاب میکنه بعد از چند لحظه سکوت، جسیکا کنار هوگو میشینه و آروم بغلش میکنه. سر هوگو رو که درد میکرد روی شونش میذاره و موهاشو نوازش میکنه. اما هوگو یک دفعه از جاش بلند میشه و بهش میگه ادای مادرای مهربون واسه من در نیار. جسیکا هیچ حرارتی نداره که به هوگو بده. هیچ وقت همسر خوبی براش نبوده و عشقشون فقط یه مسخره بازی بوده. جسیکا با آرامش میگه که چیزی که الان نیست. حسمی میه که هوگو باید بگیره که فردا میخواد چیکار کنه. هوگو پریشون میگه باید ببینه چی پیش میاد. یهو یه وسط حرفش برمیگرده سمت جسیکا و میگه میتونی بگی دوست هم داری؟ جسیکا سکوت کرد. هوگو با ناراحتی میگه میبینی؟ حتی از همینم محروم بودم. جسیکا هم متقابلا میگه تو خیال میکنی منو دوست داشتی؟ و باز هم سکوت. به هر حال جسیکا همیت زیادی نمیده و بعد از چند لحظه یک میگه چرا سعی کنی متقاعدش کنی؟ هوگو میگه هودرر خیلی بد قدره. اما جسیکا اصرار میکنه که اگه هودرر واقعا در اشتباهه، خب هوگو باید بتونه اینو براش ثابت کنه. شاید یه راهی وجود داشته باشه که بشه همه رو راضی کرد که همه بتونن با هم کار کنن. ملتمسانه میگه حداقل یک بار قبل از کشتنش امتحان کنه. صدای در حرف جسیکا رو قطع میکنه. هوگو با خوشحالی از جا میپره و مطمئنه که الگا برگشته. اما وقتی جسیکا درو باز میکنه، هودرر پشت دره. مؤدبانه و صمیمی از جسیکا که بهش خیره شده میپرسه، ترسوندتش. وقتی میاد تو، هوگو باایش سرسنگینه، نمیپرسه که حرف خاصی باش داشته. هودرر با همون کاریزمای مهربون و خاص خودش میگه انتظارشو داشته هوگو امروز مخالفت کنه و نیازی به عذرخواهی نیست. چیزای خیلی زیادی هست که دوست داره به هوگو توضیح بده اما نمیشه. چون ساعت کاری دیگه تموم شده. و جفتشون روز بسیار عجیبی داشتن. از جسیکا میپرسه که چیزی برای نوشیدن دارن که خب جسیکا اعتراضایی میکنه و میگه نه. هودرر با لبخند میگه مجبور نیستن این وقت شب بپذیرنش و اصلا خودشم هم نمیدونه چرا اونجا آمده میگه حالا که کارش با کارسکی و شاهزاده خوب داره پیش میره انگار یکم حوصله‌اش سر رفته. هگو میخواد واکنش نشون بده اما هودرر ساکتش میکنه و میگه فردا راجع بهش حرف میزنه. ماکس میکنه و میگه توی تاریکی لب پنجره اومده و دیده انگار از توی خونه اونا نور و روشنی ساطع میشه اینطوری شده که یواش و بدون بیدار کردن اسلیک و جورج از اتاق بیرون اومده و انگار هودرر با صلابت گاردش رو پایین گذاشته و داره نشون میده مثل همه آدمای دیگه احتیاج به محبت و معاشرت داره این گاهی بی دغدغه بره و با یه آدمی گپ بزنه و جسیکا پرسید درسته که بارداره از اسلیک شنیده. جسیکا به شدت تکذیب میکنه و میگه داشته سر به سر اسلیک او هودرر به جسیکا زل زد اما ذهنش جای دیگه ای سیر میکنه. تعریف میکنه که جایی که قبلا کار میکرده شبها میرفته توی اتاق غذاخوری صاحبخونه و با هم پیپ میکشیدن و بچه ها توی اتاق بازی میکردن. انگار فکر بودن بچه توی خونش خوشحالش کرده باشه. بعد به خودش میاد، رو میکنه به هوگو و میگه که امشب خوب استراحت کنه و لازم هم نیست فردو زودتر از ساعت نه سر کار بیاد. از جا بلند میشه که بره، هوگو هم پا میشه که بدرقش کنه، ولی جسیکا خودش رو میندازه بین اون دوتا و میگه هوگو الان وقتشه. هوگو با بی‌حوصلگی سعی میکنه جسیکا رو کنار بزنه اما جسیکا میگه هوگو قول داده بود. میچرخه به سمت هودرر و میگه هوگو با هاش مخالفه. هودرر سر و با میگه خودم فهمیده بودم. جسیکا میگه هوگو میخواد توضیح بده. هودرر که از احوالش مشخص بود که امشب نمیخواد راجع به سیاست و کار حرف بزنه دوبار میگه فردا، فردا. اما جسیکا خوب میدونه که فردا خیلی دیره. میگه هوگو گفته اگر هودرر به حرفاش گوش نده استعفا میده. هیچ کدومشون خوابشون نمیاد و کل شب وقت دارن حرف بزنن. مرگلان از بیخ گوششون گذشته و این باعث میشه با هم بشن. هوگو سعی میکنه جسیکا رو ساکت کنه اما جسیکا جسورانه به هودرر میگه هوگو فکر میکنه شما سوسیالیست خائن هستید. هودرر انگار سرگرم شده باشه با خنده میگه سوسیالیست خائن؟ خب آره من سوسیالیست خائنم. رو میکنه به هوگو و میگه حالا که کار به اینجا رسیده بهتر صحبت کنن و میپرسه چرا هوگو فکر میکنه که اون خائنه. این میشه شروع یه بحث سنگین بین هوگو و هودرر در مورد ایدئولوژی‌هاشون. هوگو اعتقاد داره هودرر حق نداره حزب رو قاطی ساخت و پاختاش کنه چون حزبی تشکیلات انقلابیه اما هودرر داره تبدیلش میکنه به یه حزب دولتی هودرر معتقد اصولاً حزبها با به دست گرفتن قدرت به وجود اومدن هوگو هم البته این رو قبول داره اما به وسیله انقلاب و اسلحه نه با ساخت و پاخت و زیرابی رفتن هودرر میپرسه پس ناراتید اینه که چرا جایی نمیشه؟ و توضیح میده که هز نمیتونه به زور دولت رو بگیره چون اگر جنگ داخلی بشه هز به پانتاگونه که دست بالا رو داره هم ارتش و هم مهمات در اختیار اوناست و راحتی میتونن مرکز فعالیت زده انقلابی بشن اما هوگو از جنگ داخلی حرف نمیزنه مگه خود هودرر نگفت که ارتش سرخ میاد و دولت ولیت رو میکشه پایین اون وقت هز به تنهایی حکومت رو دست میگیره اما نکته‌ای که هوگو بهش فکر نکرده و هودرر کرده اینه که چطوری قدرت رو نگه دارن. ارتش سرخ توی راهه و هودرر هم بی‌صبرانه منتظرشه. اما بعد از اونم کار تموم نشده. هنوز روزای سخت زیادی پیش روی حزبه. هوگو باید بفهمه که ارتش چه از نوع آزاد کننده باشه، چه از نوع اشغالگرش فرقی با آل مردم نمیکنه. اونا باید با مردم توی کشور زندگی کنن. تا از روسا متنفرن. پس چطور ممکنه حزب پورتاریا رو دوست داشته باشن؟ اونا رو که همین روزها بهشون تحمیل کردن. از نظر بیشتر مردم حزب پورتاریا بیگانه پرست. اون وقت حزب پانتاگون به راحتی توی مردم حل میشه و باز هم فعالیتش رو ادامه میده. تازه، کلن هم اوضاع مملکت خوب نیست و هر کسی جای دولت ولیت بیاد باید تصمیمای افراتی بگیره. این باید میشه مردم از حکومت متنفر بشن. اون وقت همین که ارتش سرخ از کشور خارج بشه مردم با یه شورش حکومت رو جارو میکنن. هوگو میگه میتونن شورش رو خرد کنن و نزب آهنین برقرار کنن. اما هو میگه که این امکان نداره. چون حزب دستش خالیه. مخصوصا وقتی حزب برجوهایی در کار باشه که جلوی پاشون سنگ بندازه. از اون طرف دهقانا اونقدر ازشون متنفر باشند که حاضر باشن خرمناشون را آتیش بزنن فقط برای اینکه به حزب گرسنگی بدن. حکومت میگه اینا کدوم مهم نیست. هر انقلابی دردسرای خودشو داره. حزب بولشویک هم توی انقلاب 1917 این بقایای رو گذرونده. حزب بولشویک شاخی تندروی حزب سوشال دموکرات کارگریه که حزب کمونیست رو پایگذاری میکنه و در اکتبر به رهبری لنین انقلاب میکنن و قدرت رو از دولت موقت میگیرن و اتحاد جماهیر شوروی رو بنا میکنن. در سعی میکنه نرم و منطقی برنامهش رو برای هوگو توضیح بده. میگه حزب با لیبرال های حزب پانتاگون و محافظه‌کارای طرفدار ولیعهد قدرت رو به دست میگیره. نه انقلابی در کار نشکستی. از اونجایی هم که این حکومت یه وحدت ملیه، هیچکی نمیتونه بهشون خورده بگیره که حزب رو خارجیات میکنن. مدرر نصف کرسی های کمیته رو برای حزب خودشون برداشته ولی قطعاً قصد نداره نصف وزیرای کابینه رو هم درخواست کنه چرا چون چیزی که حزب نیاز داره اقلیت اقلیتی که بتونه های بد و خرابکاری‌ها رو گردن حزب‌های دیگه بندازه و با مخالفت با هایی که به نفع مردم نیست محبوبیت به دست بیاره اینطوری توی دو سه سال میتونن حزب رو از میدون هوگو میگه همه درست اما اینطوری دیگه حزب از بین میره چون ایدئولوژی حزب کلا با کارهای هودرر فرق میکنه. حزب میخواد اقتصاد سوسیالیستی رو جا اندازه اونم با مبارزه طبقاتی. اما هودرر میخواد با سیاستبازی و در چارچوب اقتصاد سرمایه داری حزب رو به قدرت برسونه. اینطوری مجبور میشه سالها دروغ بگه و حقه بزنه و کثیف بازی کنه. باید از تصمیمات دولت در برابر اعضای حزب دفاع کنه. تصمیماتی که شاید با منافع حزب مقایرت داشته باشن. اینطوری اعضای و محکم حزب رو ترک میکنند و بقیه هم اون چیزی که حزب واقعاً باید باشه رو نمی بینن اون وقت گیج و ضعیف میشن. حزب هم از حالت اصلی خودش خارج میشه و بعدم حزب بورژوا به راحتی از شرشون خلاص میشه. انگار که احساساتی شده باشه میگه هودرر این حزب حزب شماست. نمیتونید زحماتی که برای استحکامش کشیدید و هایی که در راهش کردیدو فراموش کنید. خواهش به دست خودتون حزب خودتون رو فدا نکنید. هودرر بهش میگه خیلی پر حرفه و اگر اهل خطر نیست اصلا نباید وارد سیاست شده. بعد میپرسه که حالا طبق عقاید سفت و سختش چطوری میشه قدرت رو به دست گرفت هگو میگه اصلا چه نیازی قدرت رو دست بگیرن اما هودرر میگه این دیوونگی محسه که وقتی ارتش سرخ داره میرسه ازش استفاده ای نکنن اونم وقتی که خودشون اون قدری قدرت ندارن که انقلاب کنن هگو انوس با فشار میکنه که نباید به این قیمت قدرت رو دست گرفت هودرر میگه پس میخوای با حس چیکار کنی چه فایده ای داره یه چاقو رو هر روز تیز کنی ولی هیچ وقت چیزی رو باش نبری؟ حزب فقط یه وسیله است و فقط هم یه هدف داره رسیدن به قدرت هوگو اینطوری فکر نمیکنه و اعتقاد داره هدف حزب پیروس کردن عقایدشه نه چیز دیگه. اودرن هم البته میدونه که عقاید مهمن اما میگه اینا از سر آدم می پرن. اما هوگو در مورد رفقایی حرف میزنه که به خاطر عقایدشون به دست پلیس کشته شدن واقعا همکاری حزب با دولت و حزب پانتاگون خیانت به اون رفقا نیست؟ هودرر میگه گور بابای مرده درسته که اونا به خاطر حزب مردن اما من سیاست زنده ها رو دنبال میکنم و برای زنده ها کار میکنم هوگو میگه حتی زنده ها هم با این ساخت و پاخت هودرر موافق نیستند. که خب هودرر میگه آروم آروم توی ذهنشون فرو میکنیم حتی شده با دروغ هگو خونش به جوش اومده با ناباوری میگه ممکن نیست بودر به همین دروغ گفتن به هم حزبیاش رو قبول داشته باشه بودر میگه چرا که نه ما وسط جنگیم نمیشه که به همه سربازا یکی یکی برنامه بدیم هوگو میگه توی خونه پدریش همه داشتن به هم دروغ میگفتند و فقط از وقتی وارد حزب شده آدمای رو دیده که با هم صادقن همه میتونن به هم اعتماد داشته باشن هر عضو کوچیک و ساده ای از حزب در جریان تمام تصمیمات و دستورای رهبران بوده و اونقدر اراده و باور عمیقی داره که اگه اتفاق بدی هم میافتاد میدونست چرا داره با آغوش باز به استقبال مرگ میره. هودرر حرفاشو قطع میکنه و میگه از کی حرف میزنی؟ هوگو میگه از به خودمون. اما هودرر میگه که توی حزب هم همیشه مقداری دروغ هست. درست مثل همه جاهای دیگه. حتی خود هوگو مطمئنه که هیچ وقت هیچ دروغی نگفته. هوگو مطمئنه که هیچ وقت به رفقای هم بیش دروغ نگفته. و اصلا مبارزه برای آزادی مردم چه ارزشی داره وقتی اونقدر کم براشون ارزش قائل باشی که کلاشون رو با دروغ برکنی اما دروغ گفتن واسه هودرر قپی نداره هر جایی که لازم باشه دروغ میگه از وقتی متولد شدن هم دروغ توی جامعه وجود داشته و اونا همون رو به ارث بردن اینجا میدون جنگه و باید از هر وسیله برای از بین بردن طبقات استفاده کرد هر وسیله مجازه به شرطی که مفید باشه هوگو میگه در این صورت هودرر حق نداره سیاستهای ولیحت رو محکوم کنه چون اعلام جنگ به شوروی مفیدترین وسیله‌ای بوده که باهاش میشد استقلال کشور رو حفظ کرد هودرر با خنده میگه فکر میکنی من محکومش کردم هر کس دیگه‌ای هم جای اون بود همین کارو کرد بعد هم میگه که نه با آدم‌ها میجنگه و نه با ها. بلکه با طبقات و اختلاف طبقاتی میجنگه. طبقاتاً که باعث به وجود اومدن آدم ها و سیاست های مختلف میشن هوگو به مسخره میگه بهترین راهی که برای مبارزه پیدا کردین این بوده که اونا رو توی حکومت با خودتون شریک کنید اما هودرر با جدیت میگه که در حال حاضر بهترین راه دقیقا همینه یه لحظه مکس میکنه بعد میگه چقدر به پاکی خودت علاقه داری پسر جون چقدر از اینکه دستات آلوده بشم میترسی باشه پاک بمون اما این به درد کی میخوره؟ تو اصلا چرا عضو هزب شدی؟ پاک و منزه بودن فقط به درد درویش ها و کشیش ها میخوره. شما روشنفکرا و برجوه های آنارشیست فقط برای اینکه کاری نکنید به این پاک بودن روی آوردین برای ساکت موندن و دست روی دست گذاشتن. اما من دستا مال است. تا آرنج دستم و کردم توی خون و کسافت. خیال کرده و معصومیت و دور از گناهی میشه حکومت کرد. هگو بهش برخورده و میگه باز برگشتن سر اون حرف که هوگو بورژوا و اشرافیه و گرسنگی نکشیده و اینا اما حتی اگه اینطور هم باشه بازم تو عقایدش تنها نیست هودرر اینجا توجهش جلب میشه و شک میکنه که هوگو قبل از اومدنش به اینجا هم از مذاکرات هودرر خبر داشت اما هوگو که یکم باچه شده میگه اینطوری نیست حرف ادیسای پشت هودرر هست و اکثر رفقا هم باهاش موافق نیستن هودرر میگه کسایی رو که باهاش مخالفن رو خودش میشتهسه اما اونا بیشتر از این که شبیه هوگو باشن شبیه خود هودررن اونا اگه الان دارن با هودرر مخالفت میکنن به خاطر اینه که فکر میکنن توی موقعیت مناسبی نیستن وگرنه خیلی جلوتر از هودرر واسه این کار اقدام میکردند در حالی که برای هوگو همه چیز توی اصول و عقاید خلاصه میشه هوگو میگه اینطور نیست اما هودرر میگه اگه این نیست این حرف رو باید قانعش کنه اگه حزب با صلح کنه جنگ تموم میشه و با رسیدن ارتش سرخ قوای لریا بهاش نمی جنگه. اما اگه توافق نکنن دولت ولیهت که طرفدار آلمانه شروع میکنه به جنگیدن با ارتش سرخ و این وسط صدها هزار نفر جونشون رو از دست میدند در این مورد هوگو چه نظری داره؟ هوگو گیر افتاده با صدایی که از ته چاه درمیاد میگه خب توی انقلاب که شیرنی پخش نمیکنن اگه بخوای به اصول پای بند باشیم خب بعد ساکت میشه. هودرر میگه خب چی؟ هوگو میگه خب به درک. هودرل میدونه که بحث رو برده. میگه میبینی هوگو تو به مردم هیچ اهمیتی نمیدی. تو فقط دلبسته به اصول و عقاید خودتی. هوگو میگه مردم چرا باید مردم رو دوست داشته باشم؟ مگه اونا منو دوست دارن؟ هودرل میگه اگه اینطوری هستن چرا اومدی تو حزم؟ تا مردم رو دوست نداشته باشی نمیتونی براشون مبارزه کنی. و میگه به حزب اومده چون هدفش درسته. اگه یه روزی ببینه که از این هدف منحرف شده از حزب استعفا میده و بله این آدم ها علاقش نیستن. اما نسل بعدی از آدم ها که قراره با ایدئولوژی حزب پربیت بشن رو دوست داره. هودرر اما اشقه امیغی به مردم داره. میگه اما من مردم را همین طوری که هستن دوست دارم. با همه بازی ها و بدی هاشون، صداشون و پوستهاشونو دوست دارم نگاه های مسترب و مبارزه نابرابرشون با مرگ و رنج رو دوست دارم برای من یک آدم کمتر و یا بیشتر هم حسابه اما تو چی پسر جان؟ تو رو خوب میشتسم تو مخربی از آدم ها متنفری چون از خودت متنفری این پاک بودن تو درست مثل مرگ، و اون انقلابی که تو کلته انقلاب ما نیست تو نمیخوای دنیا رو تغییر بدی نابودش کنی تقصیر تو هم نیست روشنف نمیتونن انقلابی درست حسابی باشن. آدم روشنفکر فقط به درد درست کردن قاتل میخوره. اوگو اینقدر عصبیه که از جاش خیز بر میداره اما جسیکا دوباره خودش رو مینداه ما بین اون دوتا که در باز میشه و جورج و اسلیک میان تو جورج با نگرانی رو میکنه به هودرر و میگه تو حسابی ما رو ترسوندی بهتر وقتیخواای بری هواخوری خبرمون کنی. هودرر میگه که اونا خواب بودن و دلش نمیاد بیدارشون کنه. بعد هم با خنده میگه که نمیدونه چه شده بود. بعد رو میکنه به هوگو و بهش میگه که باز فردا با هم حرف میزنن که هوگو جواب نمیده. هودرر با جسیکا خداحافظی میکنه و با جورج رو اسلیک از اتاق میرن بیرون. چند لحظه سکوت ممتد و زارو میگیره تا اینکه جسیکا میپرسه خب هوگو میگه که جسیکا خودش اونجا بوده و همه چیز رو شنیده. جسیکا اعتقاد داره که حق با هودرره. و هوگو میگه که جسیکا اصلا سیاست بلد نیست. از کجا میتونه اینو بگه؟ که حق با هودرره یا با هر کسی دیگه. اما جسیکا حرفش چیز دیگه ایه میگه هوگو تو داری خلاف میل خودت حرف میزنی. وقتی باهات بحث میکرد من خوب نگاهت کردم. متقاعدت کرده بود. اما هوگو میگه که اینطور نیست و هیچکس نمیتونه متقاعدش کنه که به رفقاش دروغ بگه. تازه اگه هم متقاعدش کرده بود تازه یه دلیل دیگه واسه کشتنش پیدا میشد این خطر که اون بتونه بقیه رو هم متقاعد کنه و میگه که فردا کار رو تموم میکن هودرر تنها توی دفتر کارش جلوی اجاق استاده جلوی پنجرهی که دیروز بر اثر ترکیده بود یه تی که پارچه رو به دیوار پونس کردن و دولنگه پنجره رو کنار دیوار تکیه دادن آثار بمب به دیروز هنوز گوشه و کنار دیده میشه هودرر داره پیپکشان قهوه درست میکنه کسلیک سرش رو از در میاره تو و میگه که جسیکا اومده هودرر رو ببینه هودرر اول مخالفت میکنه اما اسلیک میگه که جسیکا گفته خیلی کارش مهمه پس بلاخره قبول میکنه جسیکا میاد توی اتاق ولی ساکت هودرر بهش میگه بهتر زودتر حرفشو بزنه و بره اما جسیکا ازش میخواد برای اون هم یه فنجون قهوه بریز هودرر میگه فقط پنج دقیقه ها به حرفاش گوش بده بعد هم قهوه رو میریزه و به دستش میده جسیکا میگه که حق دیشب با هودرر بوده. هودرر هم خندون ازش تشکر میکنه و یکم سر به سرش میذاره که با این حرف حسابی به خودش امیدوار شده اما جسیکا که نیمده اینو بهش بگه ازش میپرسه که چیزی شده با هوگو عواش شده و میخواد از اینجا بره جسیکا میگه دیشب که هودرر به خونه اونا اومده بود به نظر خیلی تنها میومد. ازش میپرسه که ازدواج کرده بود یا نه که هودرر میگه آره جسیکای خورد راجع به همسرش سوال میکنه که مثلا حزبی بوده یا نه یا خوشگلی بوده یا نه انگار جسیکا داره به هودرر نخ میده اما هودرر خودش رو میزنه به نفهمیدن به جسیکا میگه که پنج تموم شده و بهتر بره سر اصل مطلب جسیکا میگه اذیتش نمیکنید هودرر میگه از کی حرف میزنه جسیکا میگه هوگو دوستش دارید مگه نه هودرر نگذشت و برداشت میپرسه میخواد،, میخواد من رو بکشاره؟ همین رو میخواستی بهم بگی؟ جسیکا که یکم شکست میپرسه شما میدونستید؟ هودرر میگه از دیروز متوجه شدم بعد هم از جسیکا میپرسه که با چی قراره بکشتش تفنگ زهر، نارنجک که جسیکا میگه تفنگ که خب این به نفه هودرره هودرر بعد میپرسه چرا جسیکا ها گرولو داده مگه با هم بدن؟ اما جسیگا میگه هوگو ازش کمک خواسته میدونه که اصلا دلش نمیخواد هودرر رو بکشه برعکس هوگو خیلی هم هودرر رو دوست داره اما دستور گرفت بعدم پیشنهاد میده که اسلیک یواشکی توفنگ رو از هوگو بگیره چون غیر از اون سلاح دیگه ای نداره اما هودرر به طرز عجیب و خیلی قابل احترامی با این پیشنهاد مخالفت میکنه و میگه اینطوری هوگو تحقیر میشه بهتره که باهاش حرف بزنه و متقاعدش کنه اگه هوگو امروز صبتی رو نزنه دیگه هیچ وقت نمیزنه. صدای در میاد و اصلیت میگه که هوگو اومده. هودرر زود جسیکا رو میفرسته سمت پنجره تا از اونجا فرار کنه. جسیکا میگه که نه، نمیخواد هودرر رو تنها بذاره. اما هودرر میگه اگه جسیکا اینجا باشه، هوگو واسه حفظ قرورش هم که شده حتما شلیک میکنه. پس جسیکا از پنجره که شیشه نداره بیرون میره و هوگو میاد تو. هودرر میره سمتش و با هم میگردن سمت میز. هودرر نزدیک به هوگو ایستاده و با دقت حرکاتش رو زیر نظر داره. تا اگه هوگو خواست تفنگ رو در بیاره بتونه زود عکس‌العمل نشون بده. یه خورده با هم خوشو بش بعد و هودرر میپرسه خب تصمیمت رو گرفتی؟ هوگو از جا میپره اما هودرر میگه هوگو گفته اگه حرفاش درر رو متقاعد نکنه از منشیگریش استعفا میده. هوگو هم میگه هنوز سر اون حرفش هست. مردم میرن پشت میزهاشون و هوگو شروع میکنه چیزی رو برای هودرر بخونه اما هودرر وسط حرفش میپره و میگه میدونستی بمب دیروز رو یه زن انداخته هگو وانمود میکنه که تعجب کرده هودرر میگه که اسلیک رت پاشو توی باغ پیدا کرده بعد میپرسه هگو میشناختش یا نه هوگو میگه اصلاً ممکن نیست اما انگار خوب اسفسش بر نمیاد چون هودرر بهش میگه انگار خیلی هم تعجب نکردی هگو میگه که هنوز به خاطر دیشب یکم بی هودرر مودرر میگه باید بهش مرخصی بده. اما هگو میگه خوبه و بهتره به کارشون ادامه بدن. هگو دوباره شروع میکنه بخونه اما باز سودرر میزنه زیر خنده. میگه میدونی چرا نشون خطا رفت؟ <تصفح> چون چشماش رو بسته بود. چون از صداش میترسید. همه این وروجکا، وروجاکا رو داره به زنا میگه. از صدا میترسند. اگه این ترس نبود قاتلای خیلی خوبی می شدن. خیلی لجبازن، اقاید و افکار رو همینطوره قبول میکنن بعد هم اونقدر بهش ایمان میارن که انگار خداست واسه ما مردها فرق میکنه، برای ما راحت نیست به خاطر عقیده روی یه آدم اسلحه بکشیم چون خودمون عقاید رو میسازیم ما مردا هیچ وقت اطمینان کامل نداریم که با ماست تو چی؟ تو مطمئنی که اقبا توه؟ میگه که مطمئنه اما هودرر میگه با این وجود باز هم هوگو قاتل خوبی نمیشه. آدم کشی یه استعداد ذاتیه و هوگونو نداره. حتی اگه حزب دستور بده. مثلا وقتی حزب به کسی دستور بده روی تناب بند بازی کنه اون میتونه؟ نه. آدم باید ذاتن قاتل باشه. مثل آدمی که باید ذاتن بندباز باشه. هوگو میگه اگه تصمیم بگیره یا حزب دستور بده میتونه. هودرر میگه پس لابد میتونی با خون سردی تیر توی پیشونیم خالی کنی چون با هم توی سیاست هم همعقیده نیستی و میخواد دستش رو توی جیبش ببره اما هودرر دستش رو میگیره و آروم روی میز میذاره میگه فرض کنیم این دست یه اصله هر رو نگه داشته و این انگشت روی ماشه است فرض کنیم تو منو هدف قرار دادی. وقت اون لحظه که میخوای شلیک کنی. این از ذهنت میگذره؟ اگه حق با هودرر باشه چی هوگو آجزانه میگه که همچین فکری نمیکنه. به هیچ چیز جز کشتن فکر نمیکنه. اما هودرر میگه که هوگو قطعا فکر میکنه چون یه روشن فکره. حتی قبل از چکوندن ماشه هم همه چیز از جلوی چشماش رد میشه یه عمر هدر رفته سیاستی که به باد میره اینکه کسی توی حزب نیست که جای هودرر رو بگیره اینکه شاید هز پیش وقت به قدرت نرسه. به همه اینا فکر میکنه. چون هوگو ساخته شده برای فکر کردن، چون نمیتونه جلوی فکر کردنشو بگیره. میگه قاتلا ها آدمایی هستن که هیچ قوه تخیلی ندارن. فرقی نمیکنه براشون که کسی را از زندگی محروم کنند، چون هیچ تصوری درباره زندگی ندارن. اما آدمهایی که از مرگ دیگران می اینا کسایی هن که میتونن، و بلدن زندگی کنن. هوگو خودش رو جزو این دست آدم هایی که هودرر میگه نمی‌دونه. احساس میکنه زیادیه، مزاهم دیگرانه، کسی دوستش نداره و هیچ کس بهش اعتماد نداره. هودرر میگه ولی اون به هوگو اعتماد داره. هوگو تو گذر از سن بچگی تا مردونگی خیلی به سختی افتاده. اما اگر این برهه سخت رو از سر بگذرونه، یه مرد واقعی و کامل میشه. میگه که اگر از این توته ها جون سالم به در ببره میخواد هوگو رو پیش خودش نگه داره و بهش کمک کنه. هوگو که در درمونده شده آجزانه میپرسه که چرا هودرر این حرفا رو بهش میزنه؟ چرا امروز این حرفا رو میزنه؟ هودرر دست هوگو رو که تا الان نگه داشته بود ول میکنه و میگه فقط برای این بود که بهش بفهمونه اگه آدم متخصص نباشه نمیتونه با قوم سردی آدم بگوشه. هوگو ناامیده و توی تاریکی دست و پا میزنه میگه که میتونه باید بتونه انجامش بده اما این حرف بیشتر از اینکه خطاب به هودرر باشه تلقیم به خودشه هودرر به آرومی میگه یعنی میتونی وقتی دارم توی چشمات نگاه میکنم منو بکشی باطلای واقعی به اون چیزی که توی ذهن مردم میگذره هم توجه نمیکنند اما تو میتونی تصور اون افکاری رو که من لحظه لحظهای مرگ میکنم تحمل کنی سکوت بینشون حکم فرما میشه هودرر به هوگو نگاه میکنه و سرحال میپرسه قهوه میخوری؟ هوگو جواب نمیده تو یک لحظه فوقالعاده حساس هودرر پشتش رو میکنه به هوگو تا قهوه بریزه هوگو از جاش بلند میشه دستش رو میکنه توی جیبی که تفنگ توشه به شدت با خودش توی کشمکشه اما بعد از چند لحظه هودرر برمیگرده و آروم فنجون رو به سمت هوگو دراز میکنه. هوگو فنجون رو میگیره. او با آرامش میگه حالا تو فنگ رو بده من. دیدی که بهت فرصتم دادم اما ازش استفاده نکردی. خودش دست میکنه توی جیب هوگو و اسلحه رو در میاره. به سمت میزش میره و اونو روی میز میندازه. هوگو از هم پاشیده با بغض میگه ازتون متنفرم. هودرر به سمتش بر میگرده و میگه این طور نیست. دلیلی نداره که هوگو ازش متنفر باشه. هوگو فکر میکنه که هودرر اونو یه آدم ترسو و بیخاصیت میدونه. اما هودرر بهش اطمینان میده که اینطور نیست. درسته که هوگو آدم کشتم بلد نیست. اما مردن که بلده. هوگو میگه من خواهی نیستم. هودرر هم تایید میکنه. میگه خیانت هم مثل آدم کشی ذاتی. میگه حتما همه رفقا اونو خائن میدونن چون ماموریتش رو انجام نداده توجه هودرر جلب میشه رفقا کی باشن هوگو جواب نمیده باز میپرسه لویی تو رو فرستاده نه بازم سکوت هودرر که متوجه شده هوگو نمیخواد یا نمیتونه حرف بزنه میگه که دیگه چیزی نمیپرسه میگه خودش فردا میره به شهر و با لویی حرف میزنه لویی آدم یدنده‌ای اما خب هودرر هم هست مذاکرات هم به جای خوبی رسیده و هودرر مطمئن میتونن با بقیه رفقا کنار بیان. میگه قسمت سخت اینه که هوگو بتونه با خودش کنار بیاد هوگو ازش میخواد اسلحه از رو بهش برگردونه تا خودش رو خلاص کنه اما مدرر مخالفت میکنه میگه هنوز کارای زیادی هست که هوگو میتونه انجام بده هوگو میخواسته به خودش ثابت کنه که آدم تواناییه و ازش کار برمیاد اما راه خیلی سختی رو برای این کار انتخاب کرده موفق نشده ولی خب که چی اصلا نیازی به اثبات چیزی نیست توی انقلاب بحث سر لیاقت نیست سر نتیجه است بهتر آدم کاری رو بکنه که براش ساخته شده و بهترین کار اونی نیست که براش بیشتر از همه زحمت بکشی اونه که بیشتر از همه توش موفق باشی هوگو میگه که توی هیچ کاری استعداد نداره اما هودرر میگه هوگو خیلی خوب می نویسه. بهش اطمینان میده که روزنامه نگار خوب بودن. خیلی بهتر از آدمکش بد بودنه هوگو دو به شکه که چیزی که توی ذهنشه بپرسه یا نه اما آخرش دلو میزنه به دریا و میپرسه هودرر شما اگه الان جای من بودین چیکار کار هودرر به راحتی میگه من میزدم اما دلیل نمیشه این کار درست باشه هوگو میگه دلش میخواست جایی هودرر باشه همینقدر محکم و مطمئن اینگه که نمیتونه هودرر رو بکشه چون قلبن دوستش داره. با وجود این هنون سر حرفای دیشبش هست و توی سیاست هیچ وقت با هم هم نظر نمیشه. هوگو هیچ وقت تبدیل با آدمی مثل هودرر نمیشه و نمیخواد که هودرر ازش دفاع کنه. نه فردا و نه هیچ وقت دیگهی. بعد هم ازش میخواد اجازه بده بره و یکم تنها باشه. هودرر ازش قول میگیره که وقتی تنهاست کار احمقانه وقتی هوگو میره، هودرر سلیک رو صدا میزنه و بهش میگه هوگو کم احوالاتش به هم ریخته است و ازش میخواد دورادور هواش رو داشته باشه که یه وقت کاری دست خودش نده. اگر هم خواست بیاد پیش هودرر به بهونه این که اول باید هم کنه جلوش رو نگیرن و بذاره راحت بیاد تو. بعد هم در رو میبنده و برای خودش یه قهوه میریزه که جسیکای هو پرده جلوی پنجره رو کنار میزنه و میاد تو. هودرر از دیدن جسیکا بیشتر کلافه میشه تا متعجب. جسیکا میگه که پشت پنجره بوده و همه چیز رو شنیده. میگه که نمیخواست هودرر رو تنها بذاره، شاید خودش رو جله هودرر و به جای اون تیر میخورده. هودرر بهش میگه که چقدر جسیکا از کاری عجیب و غریب خوشش میاد. جسیکا میگه هودرر هم همینطور. خیلی عجیب بوده که به خاطر اینکه هوگو تحقیر رو به انداخته. هوگو حتی پیشنهاد کمک رو هم رد کرده. اما اون ناراحت نشد و هنوز هم هوگو رو دوست داره. چند لحظه توی سکوت به هم نگاه می تا اینکه هودرر از جسیکا می که بره. اما جسیکا از جاش تکون نمی هودرر میگه که عادت نداره چیزی رو که بهش میدن رد کنه و الان مدت به هیچ زنی نزدیک نشده. الان جسیکا می تونه بره اما پنج دقیقه بعد خیلی دیر شده. هودرر می هوگو خیلی تنهاست و فقط جسیکا رو داره. و احتیاج داره کسی دلگرمش کنه اما جسیکا میگه هودرر خیلی بهتر از پس این کار برمیاد اون و هوگو فقط همدیگر رو دارن اذیت میکنن میگه که دیشب وقتی هودرر به اتاق اونها اومده بود فهمید که هودرر خیلی تنهاست و حس کرده که خیلی شبیهم هستن میگه انگار تا حالا توی یک رویا زندگی میکرده و حالا که جلوی هودرر ایستاده مثل اینه که تازه از خواب بیدار شده انگار اولین باری یه مرد واقعی میبینه میگه که قبلا وقتی کسی بغلش میکرد خندهش میگرفت. انگار هم از هودرر میترسه. هم واقعا دوستش داره. و هر کاری هم که هودرر باهاش بکنه اصلا سرزنشش نمیکنه. هودرر آروم میپرسه وقتی بغلت میکنه دلت میخواد بخندی. جسیکا سرش رو میاندازه پایین. هودرر جلو میاد و جسیکا رو بغل میکنه. میپرسه خب. جسیکا میگه الان دلش نمیخواد بخنده. در باز میشه، و هوگو میاد تو. جسیکا و هودرر شوکه و سردرگم هستند. هودرر میخواد توضیح بده اما هوگو ساکتش میکنه. از خودم پرسیدم چرا منو نکشت یا بیرونم نکرد. گفتم غیر ممکنه کسی انقدر دیوونه و اینقدر باگذشت باشه. اما حالا همه چیز روشن شد. پس به خاطر زنم بوده. این بار جسیکا میخواد توضیح بده اما هوگو جلوی اون رو هم میگیره و میگه که از جسیکا ناراحت نیست. حسودیش هم نشده. اصلا اونا هیچ وقت رو دوست نداشتن. فقط از این ناراحته که فریب هودرر رو خورده. حتما هودرر حسابی به ریشش خندیده. رو میکنه به هودرر که میخواد حرف بزنه و میگه نه. نیازی به عذرخواهی نیست. اتفاقا ممنونم که بالاخره یه بار اجازه دادید شما رو ناراحت ببینم. و بعد خیز بر میداره سمت میز و تفنگش رو از روش بر میداره و به سمت هودرر نشونه میگیره. شما کار رو برای من راحت کردید. میبینین دارم توی چشماتون نگاه میکنم و دستم نمیدرزه و به خودم میگم گور بابای هرچی که توی فکر شما میگذره. هودرر از هوگو میخواد تارون باشه و حماقت نکنه. اما دیگه خیلی دیر شد. هوگو سه بار تیر رو خالی میکنه. جسیکا فریاد میکشه و جورج و اسلیک دوون دوون میان توی اتاق. اسلیک با خشونت تفنگ رو از دست هوگو بیرون میکشه اما هودرر که خیلی سخت نفس میکشه بهش میگه کاریش نداشته باشید روی صندلی میافته و ادامه میده به خاطر حسادت منو زد به جسیکا اشاره میکنه و میگه من داشتم با این دختر میخوابیدم و بعد از دنیا میره خب اینجا برمیگردیم به زمان پرده اول و انگار اتفاقاتی که توی این پردههای دوم تا پرده ششم افتاد و گذشت هوگو داشته برای اولگا تعریف می کرده و از اینجا به بعد ادامه همون اتفاقات پرده اوله. اولگا با حیرت میگه: "پس واقعا درسته. واقعا تو اونو به خاطر جسیکا کشتی؟" هوگو سردرگمه میگه هودرر رو کشت چون در رو باز کرده بود اون اونجا بود و جسیکا توی بغلش بود میگه انگار از مدت ها پیش توی این تراژدی زندگی میکرده و برای کامل کردن اون تراژدی بوده که شلیک کرده الگا ازش میخواد که خوب حواسش رو جمع کنه و به سوالهای بعدی الگا جواب بده میپرسه که هوگو به کاری که کرده افتخار میکنه اگه عقب برگرده بازم این کارو انجام کار اما هوگو میگه که تنها این کارو نکرده این قتل یه اتفاق بود اگر دو دقیقه زودتر یا دو دقیقه دیرتر در رو باز میکرد اینطوری نمیشد. چون هوگو داشت میرفت تا بهودرر بگه که پیشنهاد کمکش رو قبول میکنه. این قتل اتفاق افتاد ولی انگار وجود وجوده قاتل بود میگه وقتی توی زندان بوده فکر میکرده که اگه الگا اونجا بود بهش میگفته که باید قزایا رو ساده بگیره حزب از هوگو خواسته بود ودرر رو بکشه و اونم کشت دیگه اهمیتی نداره چرا و چطوری اما هوگو می سولگا نیست نمیتونه به همین راحتی همه چیز رو قبول کنه نمیتونه این قتل رو از محرکش جدا کنه خیلی اوقات فکر میکنه که همه چیز رو خیلی خوب فهمیده خیلی راحت میتونه به خودش بگه به خاطر عقاید سیاسی بوده که هودر رو کشته و دیدن اون با جسیکا فقط یه محرک کوچیک بوده میگه که خیلی جوان و بی تجربه بوده و می‌خواسته جنایت رو مثل یک سنگ بندازه گردنش ولی میترسیده که بارش زیادی براش سنگین بوده باشه اما اشتباه میکرده اشتباه میکرده چون این جنایت بی اندازه انگار هیچ وزنی نداره دو سال رو توی زندان گذروند از جسیکا جدا شده و منتظره ببینه تا رفقاش میکشنش یا نه همه اینا به خاطر اون جنایته اما باز هیچ باری رو, رو روی شوناهاش و قلبش حس نمیکنه این جنایت شده سرنوشتش از بیرون داره رو زندگیش حکومت میکنه اما نمیشه دیدش و نمیشه لمسش کرد مثل یک مریضی که ذره ذره آدم رو میکشه اما هیچ دردی نداره میگه که هودرر رو دوست داشته خیلی هم دوستش داشته وقتی با اون بوده خشم و ناراحتیش فروکش میکرده میگه جنایتش نیست که داره میکشتش مرگ هودرره. ولی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ده روز رو توی ییلاق گذرونده و دو سال رو توی زندان و هنوز همون آدمیه که بوده خب که چی الگا تصمیمش رو گرفته به هوگو گفت تو به زودی وارد حز میشی نصف شب لوی و شارل باید بیان و تو رو بکشن اما من درو در براشون باز نمیکنم بهشون میگم تو برگشت پذیری هوگو به خنده میافته و میگه برگشت پذیر چه کلمه مسخره ای اما الگا توجهی نمیکنه. میگه که از فردا دستورهای جدیدی بهش میدن و از هوگو میپرسه موافقه یا نه وقتی هوگو موافقت میکنه اولگا یه نفس راحتی میکشه و خودش رو میندازه روی سندلی از نتیجه گفتگو راضیه و میگه باز هم مثل قبل به هوگو کمک میکنه هوگو میگه اولگا تغییری نکرده همونقدر پاک و خالصه که قبلا بود اولگا میگه که هر روز به هوگو فکر میکرده هوگو میپرسه بسته شکلات مسموم رو اولگا فرستاده اولگا میگه نه ولی می میدونسته رفقا میخواستن بفرستند. هوگو میپرسه خود اولگا چه فکری میکرد. اولگا سرش رو خم میکنه و توی موهاش چیزی رو به هوگو نشون میده. موهاش سفید شده. میگه که یک شبه اینطوری شده. از هوگو میخواد که دیگه هیچ وقت ترکش نکنه. دیگه سختیار رو با هم تحمل میکنن. هوگو با لبخند میگه که دوباره میخواد از اسم راسکولنیکوف استفاده کنه. این اسم رو اولگا براش انتخاب کرده و هوگو خیلی دوستش داشته. اما اولگا مخالفت میکنه و میگه که هوگو با این اسم خیلی معروف شده. بعد از هوگو میپرسه پنج دقیقه بیشتر به نیمه شب نمونده. اولگا از هوگو میخواد خوب به حرفاش گوش کنه. چیزایی باید به هوگو بگه که خیلی هم مهم نیستن ولی هوگو اول از شنیدنشون تعجب میکنه که البته بعدن درک میکنه. میگه خیلی راجع به حرفایی که هوگو در مورد داستان زده خوشحاله چون اگه هوگو از انجام اون کار راضی و خوشحال بوده اون وقت شنیدن این حرفها براش سخت می میشدن. هوگو که توجهش جلب شده میپرسه که چی میخواد بگه. اولگا نفس عمیقی میکشه و میگه که هوگو باید کاری که کرده رو فراموش کنه. هوگو از جا میپره. اولگا می میکنه که چیز خاصی هم نیست. هوگو خودش هم دقیقاً نمی دونه نمیدونه چیکار کرده و چرا این کارو کرده. پس بهتره که فراموشش کنه. انگار که یه کابوس بوده باشه. اون آدمی که اسمش بود و توی زندان با شکلات مسموم شد و مرد. به همین راحتی. هوگو میپرسه چرا؟ مگه اونا چیکار کردن؟ الگا با آرومی میگه حزب سیاست‌هاش رو تغییر داده. هوگو با ناواوری بهش خیره میشه. اولگا ملتمسانه میگه اونطوری نگام نکن. سعی کن بفهمی وقتی ما تو رو پشهودررفرستادیم ارتباطمون رو با شوروی از دست داده بودیم. میگم اونطوری نگام نکن. هوگو ازش میخواد ادامه بده. اولگا توضیح میده که زمستون سال پیش اتحاد جماهیر شوروی به حزب اعلام کرده که باید به دولت نزدیک بشه. همه تاعت کردند یه کمیته مخفی 6 نفره درست کردند که اعای حکومت و حزب پاانتاگان هم تویش عضور داشتن. هوگو میپرسه و بین اون 6 نفر سه عضبش از شما بوده الگام میگار، اما هوگو از کجا میتونست؟ هوگو میگه که همینطوری حد زده اللگا ادامه میده که بعد از اون کار دیگر وارد جنگ نشد و اینطوری حز جون صد هزار نفر رو نجات داد. دقیقاً حرفها و پیش بیننی ران که دارن عملی میشن هوگو، خودش بقیهش رو حدس میزنه. پس شوروی اینو هم بهتون گفت که نمیخواد حکومت رو فقط به حزب پرشاریا بسپاره چون ممکنه بعدن دردسر بشه و مردم ما رو با یه شورش جارو کنن. اولگا ماتش برده. هوگو به تنه میگه حس میکنم این حرفا رو قبلا یه بار دیگه شنیده. بعد میپرسه که پس چرا هودرر رو سر نیست کردن؟ اولگا میگه کارش بی‌موقعه بود. هنوز وقتش نرسیده بود. هوگودمالی حرفش رو میگیره و میگه پس باید کشته میشد. ولی حدس میزنم خاطره خوبی ازش ساخته اولگا میگه که این کار ضروری بوده. ادامه میده که حتما آخر جنگ مجسمه های زیادی از هودرر میسازن و همه جای شهر روی کوچه ها اسمش رو میذارن. توی کتابای تاریخ با آب و تاب ازش حرف میزنن ولی اون وقت قاتلش کی بوده؟ یکی از مزدورای آلمان. اولگا توضیح میده که رفقای هزبی میدونستن کسی که هودرر رو کشت حزبی بوده. هیچ وقت باور نمیکنن، فقط از روی احساسات بود. تازه اونا تا جایی که میتونستن براشون توضیح دادن. هگو میگه در این صورت به رفقاشون دروغ گفتن اما اولگا میگه که اینطور نیست ما در حال جنگیم نمیشه که همه چیز رو یکی یکی به همه این سربازا گفت با شنیدن این حرف هگو میزنه زیر خنده همه ی حرفایی که هودرر میزد رو دوباره داره میشنوه اولگا داره مو به مو تکرار میکنه هگو اینقدر میخنده که اشک از چشماش میاد میگه کاری کرده که هیچکس سرش نمیخواد گردن بگیره خودش نمیدونه چرا این کارو کرده و حالا اونها هم نمیدونن باید باهاش چیکار با نفرت به اولگا ظلم می‌زنه همتون سر و ته یک اربازی تو هودرر لویی همتون مثل همین آدمای فاتح آدمای قرس رهبرای حزب فقط منم که راهو اشتباه رفتم اولگا سعی می‌کنه هوگو رو آروم کنه میگه هوگو و هودرر رو دوست داشته پس باید کمک کنه اونا راهش رو ادامه بدن هوگو به قدری ترسناک نگاهش می‌کنه که اولگا ساکت میشه و یه قدم عقب میره هوگو به آرومی میگه کاریش نداره فقط اولگا باید یه چند دقیقه ساکت بشه تا اون بتونه افکارش رو جمع و جور کنه. خب باشه. اون برگشت پذیر اما کاملا تنهاست. نمیتونه خودش رو عوض کنه. جنایتش برگشت پذیر نیست. اما حالا اون جنایت فقط یه اشتباه بیاهمیت. اون وقت حقا همین فردا باز اسمش رو عوض میکنه و دست در دست اعضای حزب پانتاگون کار میکنه. چند لحظه فکر میکنه، بترون میکنه به الگا و میگه جواب منفیه. من دیگه با شما کار نمیکنم. اولگا با پریشونی سعی میکنه بهش بفهمونه که در این صورت کشته میشه. هوگو به میگه میدونم. تازه دیرم کردن. اولگا باز از هوگو میخواد که دوباره فکر کنه. میگه حزب به هوگو اعتماد میکنه چون هوگو نشون داده لیاقتش رو داره. حتما هوگو هم دلش نمیخواد اینطوری برای هیچ و پوچ بمیره. هوگو میگه نمیدونه چرا در رو کشته اما میدونه چرا باید میکشتهش. به خاطر اینکه اون سیاستش غلط بود چون به رفقاش دروغ میگفت و داشت هزور رو از مسیر اصلیش منحرف میکرد اگر هوگو وقتی توی دفترش باهاش تنها بود میکشتش واقعا به خاطر همین سیاستهاش بود و هوگو هم الان با فکر کردن به ماجرا خجالت نمیکشید اما حالا میکشه چون بعد از خیانت جسیکا این کارو کرد ولی حالا اونا دارن میگن که هوگو هودرر رو به خاطر هیچ و پوچ کشته میگه که هنون سر عقیدهش در مورد سیاست‌های هودرر هست و وقتی توی زندان بوده فکر میکرده اولگا و بقیه هم باهاشن اما حالا فهمیده که توی عقایدش تنهاست با این وجود باز هم عقیدش رو تغییر نمیده صدای ماشین خبر از اومدن لویی و شارل میده اولگا از هوگو میخواد تفنگش رو بگیره و شانسش رو امتحان کنه اما هوگو رو نمیگیره میگه که هزم هودرر رو تبدیل به یه آدم بزرگ کرده اما اگه هوگو کاری رو که کرده این کار کنه انگار مرگ هودرر رو در حد یه مرگ آدم معمولی پایین آورده. انگار کل ماجرا فقط یه اتفاق بوده، انگار هودرر رو فقط به خاطر یک زنگ کشتند. اما آدمی مثل هودرر اتفاقی میره، بلکه به خاطر عقیده و سیاستش میمیره. میگه که اگه دوباره اسم کف رو سر زبان‌ها بندازه و به کاری که کرده جلوی همه اعتراف کنه، تازه مرگ هودرر ارزش و جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه. تازه هودرر اون مرگی میرسه که لایقش بوده در میزنن هوگو به طرف در میره و میگه من هنوز هودرر رو نکشتم اولگا هنوز نه تازه میخوام برم بکشمش و خودمو هم باهاش بکشم دوباره در میزنن اولگا با فریاد و بغز از افراد پشت در میخواد که از اونجا برن اما هوگو درو باز میکنه جلوی در میایسته و با صدای بلند میگه برگشت ناپذیر چیزی که شنیدید روایت دست های آلوده ژامپل سارت بود دست های آلوده بیشتر از اینکه یک تراژدی باشه یه ملودرامه که تا حد زیادی تفکرات اگزیستانسیالیستی سارت رو در خودش گنجونده هوگو و هودرر پررنگتنین شخصیت های نمایشنامه نماینده دو تفکر متفاوت هستند هوگو جوون، پرشور و انقلابیه، هیجان زده است و خیلی احساسی فکر میکنه و تمام ذهنش رو ایدئولوژی پر کرده و یک آرمانگرای واقعیه از طرف دیگه هودرر پخته و سرد و گرم چشیده است می دونه چی میخواد و به کدوم سمت داره میره و بیشتر از ایدولوژی و فکر نتیجه یه کار براش مهمه. دیدیم که دروغ گفتن و زیرابی رفتن اصلا براش قپی نداشت. در کل هودرر یه شخصیت عملگر است. با روبرو کردن این دوتا شخصیت محدودیت های هر دوی این جریان های فکری رو نشون میده، و نشون میده چرا با هر دو مخالفه. یه لحظه به این فکر کنیم که در نهایت، کار این دوتا شخصیت به کجا کشیده شد؟ هر دو مرک سارت نه دیدگاه متریالیستی هودره رو قبول داره که عمل صرف زاده محیط اطراف ماست نه مثل هوگوی ایدئالیست انسان رو کاملا از جهان بیرون از ذهنش فارغ میدونه بلکه فکر میکنه برایند این دوتاست که هر عمل و حقیقتی رو شکل میده هم محیط روی انتخاب‌های ما تأثیر میذاره هم جهانبینی و تفکرات خودمون. اینجا و به همین دلیل هم هست که سارتر به تفکر خشک کمونیست های فرانسه انتقاد میکنه. سارتر میگه هیچ ایدئولوژی نمیتونه به شکل آرمانی روی کار بیاد چون انسان ها حتی توی ایدئولوژیک ترین محیط ها هم انسان باقی میمونن. با تمام داستان ها و اشکالات و باک های انسانیشون. مسئله دیگه مسیر شخصیت هوگو در طول داستانه. سارت یه جمله معروف داره که میگه انسان محکوم است به آزادی از دیدگاه اگزیستانسیالیستی زندگی یعنی آزاد بودن انتخاب کردن و مسئولیت انتخاب ها رو پذیرفتن و این چیزیه که هوگو نداره هوگو نابالغ و احساسیه و تحت تاثیر حساسیت تصمیم میگیره گذشته برجوهاییش و بحشتی که ازش داره اعتماد به نفس کم و نیاز شدیدش به تأیید شدن مثل زنجیر به دست و پاش پیشیدن و نمیذارن آزاد باشه تحت تاثیر همین اوامله که اولین بار تصمیم میگیره به این معمولیت سخت بره معمولیتی که پذیرفتن عواقبش براش بیش از حد توانش سنگینه در طول تقابل و تعاملش با هودرر میبینیم که هوگو مدام چیزی که قلبن فکر میکنه و چیزی که محیط یعنی حزبش بهش تحمیل میکنه بین این دوتا مدام در گردش و کشمکش. هوگو هودرر رو دوست داره، خیلی هم قبولش داره، اما باز نمیتونه بپذیرتش و در نهایت تصمیم به کشتنش میگیره. با این حال باز هم به خودش میبازه. کشته شدن هودرر نتیجه فکر و ایدئولوژی هگو نیست، نتیجه غریزه لحظهایشه و میبینیم تا لحظه آخر هم درست نمیتونه توضیح بده چرا این کارو کرده. اما توی پرده آخر و بعد از روشن شدن حقایق براش، بعد از شدن کاری که برای انجامش اون همه با خودش کلنجار رفت، از همه قیدها و بندها رها میشه و به خود آگاهی و آزادی لازم میرسه. انسان محکوم است به آزادی. اینجاست که بالاخره بعد از مدت احساس آرامش میکنه و بلاخره میتونه مسئولیت کاری که کرده رو بپذیره. نکته دیگه که نمایشنامه رو به یک شاهکار تبدیل میکنه پرداخت فوقالعاده و چند شخصیت هاست. مودرر که قرار خائن باشه، کاریزماتیک و انعطاف پذیره و با هوگو پدرانه برخورد میکنه. جسیکا که خیلی بیخیاله و دانش سیاسی زیادی نداره، گاهی بهتر از هوگو مسائل رو درک و تحلیل میکنه و خیلی بیشتر از الگای باهوش و مثلا دلسوس تو موقعیت های سخت به کمک هوگو میاد و بهش اهمیت میده. و الگا و لویی که معمولیت رو به هوگو داده بودن، در نهایت به خاطر منافع حزب بهش پشت میکنن. سارتر خودش هم به هیچ وجه شخصیت هاش رو قضاوت نمی کنه. به سادگی داستان رو روایت می کنه و تصمیم گیری در مورد شخصیت ها رو به خود خواننده بیننده و اینجا شنونده ما میکنه. خیلی ممنونم که تا اینجا این پادکست طولانی رو شنیدید و زحمت بسیار زیاد و طولانی ما برای تولید این قسمت واقعا اینطوری نتیجه به غیر از لذت برامون نداره دوباره از سفری ممنونم. و جلال آل احمد امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه که این امایشنامر رو به خوبی ترجمه کرده و گفتم چون نشرای زیادی امایشنامر رو چاب کردن ما از گفتن یک منبع خودداری میکنیم استثنان توی این قسمت امیدوارم خسته نشده باشید الیف رو دنبال کنید و بدون هیچ توضیح اضافه تا قسمت بعدی ازتون خداحافظی میکنم این نقش ماند از قلمت یادگاره